بسم الله الرحمن الرحیم کتاب فلسفه اصول اسلامی معرفی کوتاه مؤلف حضرت مرزا غلام احمد کادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام در بیست بهمن 1213 شمسی برابر با 12 فوریه 1835 میلادی در روستایی به نام کادیان در استان پنجاب هند به دنیا آمدند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 حضرت میرزا غلام احمد کادیانی علیه السلام بنابر وحی الهی اعلام فرمودند که نص قرآن کریم ثابت می کند که حضرت عیسی علیه السلام وفات یافته است و ایشان همان مسیح معود و امام مهدی است که مسیحیان و مسلمانان انتظارش را می کشند. ایشان همچنین اعلام فرمودند که تمام پیشگویی هایی که در کتاب مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور امام مهدی ثبت شده است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 اما در واکنش به پیام محبت ایشان، پرخاشگری و خشونت از جانب همه یادیان و فرقه ها به اوج رسید که این رویه تعصب و پرخاشگری هنوز هم در جریان است. حضرت میرزا غلام احمد در سال 1908 میلادی دار فانی را ودا گفتند و به سوی معبود حقیقی خیش شتافتند. پس از وفات آن حضرت مطابق پیشگویی حضرت سید کائنات فخر رسول و خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم نظام خلافه شروعش و اکنون معموریت و اهداف آن حضرت توسط خلفای ایشان انجام می شود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 یک هندو به نام سوامی سادو شگان چندر از 26 تا 29 دسامبر 1896 میلادی همایشی با عنوان ادیان جهان برگزار کرد و در آن از نمایندگان ادیان جهان دعوت نمود که به 5 سوال زیر با استناد به کتاب الهامی خیش پاسخ دهند 1 حالات طبیعی، اخلاقی و روحانی کدامند؟ 2 ماهیت زندگی بعد از مرگ چگونه است؟ س. هدف اصلی از وجود انسان چیست و چطور میتوان به آن رسید؟ 4. تأثیر شریعت در دنیا و آخرت چیست؟ و 5. وسایل کسب علم و معرفت کدامند؟ هدف از همایش این بود که نیکی ادیان بر جهانیان ظاهر شود و نه نماینده از ادیان مختلف مقالات خیش را در پاسخ به این سوالات قرائت نمایند. حضرت مرزا و غلام احمد کادیانی نیز از طرف مسلمانان علاوه بر برخی علمای دیگر مقالهای نوشتند که آن را یکی از مریدانشان حضرت مولوی عبدالكریم سیالکردی در این همایش قرائت نمود. حضرت مرزا و غلام احمد با بیان معارف قرآنی در آن مقاله عظمت، حقانیت و برتری دین اسلام را بر تمام ادیان دیگر جهان به اثبات رساندند. گفتنی است که خداوند متعال به ی مقاله قبل از قرائت آن در جمع مردم موجه داد که مقاله وی از تمامی مقالات برتر خواهد شد و آن حضرت نیز این مژده را در یک اعلامیه قبل از برگزاری همایش منتشر کردند هنگامی که مقاله قرائت شد آنقدر مورد پسند مردم قرار گرفت که مدیران همایش به اصرار مردم یک روز را به همایش اضافه کردند تا قرائت مقاله به پایان برسد در نتیجه همایش به جای سه روز چهار روز ادامه یافت مطبوعات نیز برتری این مقاله را اعلام نمودند اسلام مقاله عالی جناب حضرت مرزا غلام احمد رئیس کادیان که توسط مولانا عبدالکریم در همایش مذاهب اعظم دهرم و در تاریخ 27 دسامبر 1896 میلادی در لاهور قرائت شد بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نسلی علی رسوله هلگری، طرح ادعا و دلیل آن از کتاب الهامی، الزامی است. امروز در این اجتماع خوجسته، با این هدف که افراد دعوت شده، با سؤالهای مطروح خیش خوبیهای دینشان را بیان کند، خوبیهای اسلام را بیان خواهم کرد. و پیش از شروع موضوع لازم میدانم که بگویم این جانب احتمام داشتم چیزی را بیان کنم که از قرآن شریف یعنی کلام پاک خداوند باشد زیرا به نظرم بسیار ضروری است که هر کسی که معتقد به است و کتاب خود را ربانی میپندارد به هر سوالی فقط با استناد به کتاب خود پاسخ دهد و اختیار وکالت خود را آنقدر نگستراند که گویی دارد کتاب جدیدی می نویسد پس چون امروز وظیفه به اثبات رساندن خوبی‌های قرآن و به نمایش گذاشتن کمالات آن به عهده ماست شایسته است که در هیچ موردی از بیان خود قرآن بیرون نرویم و هر یک از اهداف قرآن را با تعیین و تسریح و عطف آیات آن به قلم آوریم تا مقایسه برای هزار آسان گردد به این دلیل که قرار از هر معتقد به کتابی ملزم به استناد به کتاب الهی خیش باشد و سخنان همان کتاب را نقل کند، از بیان احادیث خودداری می کنم چرا که احادیث صحی همه از قرآن مجید اخص شدهاند. قرآن همان کتاب کاملی است که تمام کتابها ها آن ختم می شوند خلاصه امروز روز ظهور شن و عظمت قرآن مجید است از خداوند متعال میخواهم که در این کار یاورم باشد آمین سوال اول حالات طبیعی، اخلاقی و روحانی کدامند؟ حضار گرامی. بعضی از عبارتهای بخش مقدمه در صفحات ابتدایی ممکن است به ظاهر بیرفت به نظر برسند اما فهم آنها نخست برای درک درست پاسخ سوالات بسیار ضروری است لذا عبارت های زیر را به عنوان پیشگفتار نوشتم تا درک اصل مطلب آسان شود. سه نوع حالت انسانی برای روشن کردن سوال اول دربارهی حالات طبیعی، اخلاقی و روحانی انسان باید بدانید که کلام پاک خداوند متعال قرآن مجید این سه حالت را اینگونه تقسیم کرده است. یعنی برای هر سه حالت یک مبدع جداگانه یا به عبارت دیگر سه سرچشمه قرار داده است که این حالات به طور جداگانه از آنها به وجود می آیند یک نفس عامره قرآن مجید نخستین سرچشمه یعنی نفس اماره را که مصدر تمامی حالتهای طبیعی است معرفی کرده است و در این رابطه می‌فرماید ان النفس لاماره بالسوق سوره یوسف آیه پنجاه چهار یعنی نفس اماره انسان را به سوی بدی که ضد کمال و برعیت حالات اخلاقی اوست متمایل می سازد و به راه های نادرست و ناپسند سوق می دهد. خلاصه اینکه میل به سوی بی و بدی حالتی از حالات انسان است که قبل از حالت اخلاقی به طور طبیعی بر انسان مستولی می شود این حالت در زمانی تبعی نامیده می شود که انسان با عقل و معرفت گامبر ندارد و مانند چهارپایان در امور خوردن، نوشیدن، خوابیدن، بیدار شدن، بروز عصبانیت و جوش زدن و غیره، پیرو جذبات و احساسات فطری خود شود. اما وقتی انسان با عقل و معرفت بر حالات فطری خود فایق آید و اعتدال مطلوب پیشه کند، نام این حالت دیگر حالت تبعی و فطری نخواهد بود. بلکه مبدل به حالتی اخلاقی و روحانی می‌گردد که متأقباً ذکر خواهیم کرد. دو، نفس لوامه در قرآن مجید سرچشمه دوم که دلالت بر حالت اخلاقی می‌کند، نفس لوامه است. مصحف شریف در این باره می‌فرماید: وَلَا أُقْسِمُ نفس قیامت آیه سه یعنی به آن نفسی سوگند می میخورم که در هر بی اعتدالی و کار بد خودش را ملامت میکند این نفس لوامه دومین سرچشمه حالات انسانی است و حالات اخلاقی از آن پدیدار میشوند در این مرحله انسان از جنبندگان دیگر متمایز میگردد در آیه بالا سوگند خوردن به نفس لوامه به دلیل گرامی داشتن آن است گویی در این آیه انسان به سبب ارتقا از درجه نفس اماره به درجه نفس لبوامه در درگاه خداوند متعال سزاوار عزت و تکریم می گردد. علت نامگذاری این مرحله به نفس لبوامه آن است که در این مرحله نفس انسان را نسبت به بدی ملامت می کند و راضی نمی شود که جهت تأمین احتیاجات طبع خود مانند شطور بیمهار باشد و مانند چهار پایان زندگی کند بلکه می که وضعیتش بهتر شود و اخلاق خوب پیشه کند و در همه امور زندگی هیچ بی از خود بروز ندهد و احساسات و خاصه های فطری خود را بعد از اقل نشان دهد. پس چون این نفس نسبت به کار بد ملامت می کند به همین خاطر نامش نفس لوامه یعنی بسیار ملامتگر است اگرچه نفس لوامه احساسات طبیع خود را دوست ندارد و ملامت می کند؟ اما به طور کامل هم قادر به انجام نیکی ها نیست و گاهی احساسات فطری بر او غلبه می کند و پس از لحظش سقوط می کند. به عبارت دیگر نفس لوامه مانند کدک ناتوانیست که نمی خواهد بیفتد، اما به علت زعف خود زمین می خورد و سپس بر این زعف خود نادم و شرمنده می شود. خلاصه این که نفس لوامه آن حالت اخلاق نفس است که نفس اخلاق فاضله را در خود ذخیره کند و سرکشی بیزاری جوید اما توان غلبه کامل بر بدیها را هم نداشته باشد